جن خودخواه نوشته ی ریچارد داکیز فصل دودهم آدم خوب جلوند آدم های خوب, خوب عقبن به نظر می رسد این عبارت در دنیای بیسبال پیدا شده باشد بعضی صاحب نظران هم آن را اشاره به مفهوم زمینی دیگری میدانند گرد هاردین زیستشناس آمریکایی آن را به عنوان لب به کلام چیزی که شاید بتوان جامع شناسی زیست یا خودخواهی جن نامیدش به کار برده است براهدی می شود دید که بیتناسب هم نیست اگر مفهوم محاورهی آدم های خوب را به معادله داروینی آن برگردانیم خوب کسی است که به دیگر افراد هم نوع خود کمک می کند و از خود مایه میگذارد تا آنها جن هایشان را به نسل بعد منتقل کنند بنابراین ظاهرا آدم های خوب محکومن به کاهش در تعداد با داروینیسم فاتحه خوبی خوانده شده است اما واژه محاوره خوب یک تعبیر فنی دیگر هم دارد اگر این تعریف را در نظر بگیریم که از معنی ای آن چندان دور نیست آدمهای خوب میتوانند جلو بیفتند این فصل درباره این نتیجه خوشبینانهتر آن است حسابگری فصل دهم ده را به یاد بیاورید پرندههایی بودند که ظاهرا ایسارگرانه به هم کمک میکردند اما آنهایی که قبلا از کمک کردم خودداری کرده بودند نمیپذیفتند و با آنها کینه داشتند. حسابگرها بر جمعیت مسلط شده بودند. زیرا بیشتر از هالوها که به همه کمک میکردند و مورد بهره جویی واقع می شدم. یا حوق بازها که سعی می کردن از همه استفاده کنند و سر همه کلاه بگذارند. ژن خود را به نسل آینده منتقل کرده بودم. داستان حسابگرها یک اصل کلی مهم را به نمایش میگذارد که رابرت تریورز آن را ایثارگری دوجانبه نامیده است. همونطور که در مورد ماهیرفته گردیدیم میثارگری دوجانبه فقط به اعضای یک گونه واحد محدود نمی‌شود، در همه روابط همزیستانه وجود دارد. مثلا مورچههایی که گله شطشان را می‌دوشیدند. بعد از اینکه فصل دهم ده را نوشتم یک دانشمند علوم سیاسی آمریکا به نام رابرت اکسلورد که گاهی کارهای مشترکی با وید همیلتون که اسمش در صفحه های زیادی از این کتاب آمده انجام میداد از مفهوم ایسارگری دوجانبه در یک راستای جدید و جالب استفاده کرد همین رابرت اسکولورد اولین بار مفهوم فنی واژه خوب را که من در پاراگراف اول به کنایه آوردم جا انداخت اکسلورد مانند بسیاری دیگر از دانشمندان علوم سیاسی، اقتصاددانان، ریاضیدانان و روانشناسان شیفته یک بازی ساده برد و باخت به نام معمای زندانی شده بود. این معما بسیار ساده است. من افراد هوشمندی را می‌شناسم که با تصور اینکه حتماً چیز پیچیده‌ای در آن باشد، اصلاً آن را درست نفهمیدند. اما سادگیش اش گول است تعداد زیادی از قفسهای کتابها به شاخه های این بازی فریب دهنده اختصاص یافته است بسیاری از افراد با بر این باورند که کلید برنامه‌ریزی راهبردی دفاعی در آن است و ما با بررسی آن می از وقوع سومین جنگ جهانی پیشگیری کنیم من به عنوان یک زیست با اکسلورد و همیلتون در این نظر موافقم که بسیاری از حیوانات وحشی و گیاهان در طول تاریخ تکامل همواره مشغول بازی های زندانی بودند. در روایت اصلی که بازیگر آن انسان است، یک بانکدار هست که حکم صادر می کند و پول های برده را به دو بازیکن کن می دهد. فرض کنید من دارم در مقابل شما بازی می کنم. گرچه همانطور که خواهیم دید، مقابل برای وضعیتی که ما باید نسبت به هم داشته باشیم واژه‌ی دقیقی نیست. در دست هر کدام از ما فقط دو کارت هست. با های همکاری و کلک. هر کدام ما در بازی یکی از ورق‌هایمان را به پشت روی میز میگذاریم. وقتی ورق به پشت است طرف مقابل متوجه نمی شود که چه حرکتی داشته‌ایم. این است که همزمان ورق‌هایمان را می‌آوریم. بعد با نگرانی منتظر میشویم تا بانکدار ورقها را برگرداند نگرانی ما به این خاطر است که پولی که برنده میشویم فقط بستگی به ورق خودمان که میدانیم چیست ندارد بلکه به ورق بازیکن دیگر که تا وقتی بانکدار نشان ندهد نمیدانیم چیست هم بستگی دارد چون دو تا دوتایی ورق وجود دارد چهار وضعیت ممکن است پیدا شود در هر وضعیت پولی که میبریم صورت زیر است به احترام نصب شمال آمریکایی این بازی از دلار استفاده شده است. وضعیت 1 هر دو همکاری را آوردیم. بانکدار به هر کدام ما 300 دلار میدهد. این مبلغ قابل ملاحظه پاداش همکاری دو جانبه ماست. وضعیت 2 هر دو کلک را میآوریم. بانکدار هر کداممان را 10 دلار جریمه می کند. این مجازات کلک دو جانبه است. وضعیت 3 شما همکاری را آوردید من کلک را آوردم بانکدار به من 500 دلار میدهد وسوسه تقلب و شما هالو را 100 دلار جریمه می‌کند وضعیت 4 شما کلک را آوردید و من همکاری را آوردم بانکدار به شما 500 دلار به عنوان پاداش وسوسه میدهد و من هالو را 100 دلار جریمه می‌کند آشکار است که وضعیت های سه و چهار عکس هم دیگرند. بازی یکی بسیار خوب و بازی دیگری بسیار بد است. در وضعیت های یک و دو بازی مثل هم است. اما وضعیت یک برای هر دو ما از وضعیت دو بهتر است. میزان معین پول مهم نیست. حتی مهم نیست که چقدرش به صورت مثبت پرداخت و چقدرش به صورت منوی جریمه است. البته اگر وجود داشته باشد. آنچه مهم است تا یک معمای زندانی واقعی محسوب شود درجه بندی رتبه آن است وسوسه برای کلک زدن باید بهتر از پاداش همکاری دو جانبه باشد که بهتر از مجازات کلک دو جانبه است که باید بهتر از بازده هالو باشد به عبارت دقیق این بازی یک شرط دیگر لازم است تا یک معمای زندانی واقعی به حساب باید میانگین وسوسه و بازده هالو، نباید از پاداش بیشتر شود دلیل این شرط اضافی بعد معلوم خواهد شد این چهار وضعیت در شکل الف در جدول بازده خلاصه شده است ولی چرا معما است به جدول بازده نگاه کنید ا متوجه شوید و فکرهایی را که از سر من هنگام بازی با شما میگذرد در نظر بیاورید من میدارم شما فقط با دو ورق بازی میکنید همکاری و کلک بیایید یکی یکی آنها را در نظر بگیریم اگر شما کلک را آورده بودید یعنی باید ستون سمت راست را نگاه کنیم بهترین بازی ممکن برای من این بود که من هم کلک را می آوردم. مجازات کلک دو جانب شامل من هم نیشد. ولی اگر همکاری را آورده بودم بازده حالو نصیبم می شد که بدتر از آن بود. خب حالا برویم ببینیم کار دیگری که شما می توانستید بکنید چه بود؟ به ستون سمت چپ نگاه کنید؟ یعنی آوردن ورق همکاری باز هم بهترین کار برای من این بود که کلک را بیاورم اگر من همکاری کرده بودم هر دو به امتیاز نسبتا بالای 300 دلاری می رسیدیم اما اگر کلک زده بودم بیشتر گیرم می آمد 500 دلار. نتیجه این است که قطع نظرت بازی شما برای من بهترین کار همیشه کلک است به این ترتیب من از روی منطق سلیم متوجه شدم باید بی به بازی شما کلک بزنم. و شما با منطقی به همان اندازه بری از خطا درست به همان نتیجه رسیدید. بنابراین وقتی دو بازیکن اهل استدال به هم بر میخورند، هر دو کلک میزنند و هر دو جریمه میشوند یا سود کمی خواهند داشت. با این حال هر کدام آنها خیلی خوب میداند که اگر هر دو ورق همکاری را آورده بودند، جفتشان به پاداش نسبتاً بالا برای همکاری دوجانبه در مثال ما 300 دلار میرسیدند، به این دلیل این بازی معمان نام گرفته و اینقدر متناقض نما به نظر می رسد و حتی پیشنهاد کرده که باید قانونی علیه آن وضع شود. واژه زندانی را از روی یک نمونه فرضی برداشتند که در آن مسئله گردش پول نیست بلکه محکومیت زندان است. دو مرد مثلا به نامهای پترسون و سوریارتی که به خاطر اعتقاب جرمی به سه سال حبس محکوم و در سلول های جداغان به اعتقاب جرم مهمتری مزنون هستند. به هر از آنها جداغانو گفته می شود اگر قبل از دیگری اعتراف کند، آزاد خواهد شد. ولی اگر شریکش پیش از او اعتراف کند، به حبس سنگین محکوم می شود. نتیجه بسته به است که هر دو زندانی می کنند و هیچ کدام آنها نمی که آن دیگری چه می کند. اگر پترسون اعتراف کند موریارتی به حبس سنگین محکوم می شود. در حالی که پترسون که تسلیم وسوسه کلک زدن شده جان سالم در می برد. در صورتی که هر دو همکاری کنند با همدیگر نه با مقامات و هیچ نگویند شواهد کافی برای محکومیت هیچ کدام وجود نخواهد داشت و هر دو به خاطر جرم کوچکتر محکومیت کمی را خواهند گرفت که پاداش همکاری دو جانبه است اگرچه محکومیت زندان را پاداش نامیدن کاری خیلی معمول است. از نظر این دو مرد که حالت دیگر برایشان حبس طولانی پشت میلحاز پاداش به حساب میآید. ملاحظه می کنید گرچه بازده ها به صورت دلار نیست و محکومیت به زندان است. ویژگی اصلی بازی حفظ شده است. به درجه بندی مطلوبیت این چهار وضعیت نگاه کنید. اگر خودتان را به جایی هریک از زندانی ها بگذارید، با این فرض که انگیزه هر کس منافع شخصی اوست و با در نظر گرفتن این آنها نمی توانند با هم صحبت کنند تا بخواهند توافقی بکنند خواهید دید که هیچ کدامشان جز متهم کردن دیگری ای ندارند و به این ترتیب هر دو به حبس سنگین محکوم می شوند آیا این معما راه گریز دارد؟ هر دو بازیکن می دانند که بازی حریف هر چه باشد برای خود آنها چیزی از کلک بهتر نیست با این حال هر دو می‌دانند که کاش هر دو همکاری کرده بودند. این برای هر دو بهتر بود. ای کاش. کاش راهی برای به توافق رسیدن وجود داشت. راهی که هر بازیکن اطمینان میداد که بازیکن دیگر قابل اعتماد است و فقط به فکر خودش نیست و راهی وجود داشت که چنین توافقی را اداره کند. در بازی ساده معمای زندانی، راهی برای تضمین اعتماد وجود ندارد. این بازی با نتیجه ضعیف متناقضی که برای هر بازیکن دارد، برگرد به کلک دوجانبه می‌انجامد مگر اینکه حداقل که از بازیکنها واقعا مثل یک قدی ساده باشد، قدیسی خوب تر از آن که مناسب دنیای ما باشد. اما این بازی یک روایت دیگر ریز دارد که معمای زندانی تکراری یا مکرر نام دارد. بازی تکراری پیچیده تر است و در پیچیدگی‌های آن امید لانه کرده است. بازی تکراری همان بازی معمولی است که با همان بازیکنها به دفعات نامعین تکرار می شود. یک بار دیگر من و شما مقابل هم قرار داریم و یک بانکدار بین ما نشسته است. یک بار دیگر در دست هر کدام من فقط دو ورق هست با بر از پای همکاری و کلک. باز هم حرکت ما این است که یکی از این دو ورق را بیاندازیم و بانکدار بر حسب قواعدی که داده شده سر کیسه را شل می کند یا جریمه تعیین می کند. اما در اینجا به جای اینکه بازی به آخر برسد دوباره ورق را بر می داریم و آماده دور بعد می شویم. دورهای مکرر بازی این فرصت را برای ما به وجود می آورد که ببینیم اعتماد بکنیم یا نکنیم. تسلیم آرامش شویم یا خشم خود را آشکار کنیم ببخشیم یا انتقام بگیریم در یک بازی که معلوم نیست چقدر طول میکشد مهم این است که هر دومان در مقابل بانکدار برنده باشیم نه در مقابل همدیگر بعد از ده دور بازی به طور نظری ممکن است من پنج هزار دلار برنده باشم البته به که شما بسیار کودن یا قدیس بوده و همواره ورق همکاری را آورده باشید در حالی که من تمام دفعات کلک را آوردم واقع تر نگاه کنیم برای هر دو ای ما این است که هر دو هر ده بار ورق همکاری را بیاوریم و از بانکدار سه هزار دلار بگیریم برای این حالت لازم نیست کسی قدیس باشد چون برای هر دو ما از روی حرکت‌های گذشته طرف مقابل معلوم شده که طرف قابل اعتماد است در نتیجه می بر رفتار طرف مقابل نظارت داشته باشیم. حالت دیگری که زیاد احتمال دارد رخ دهد این است که هیچ کدام به دیگری اعتماد نکنند. هر دو در ده دور بازی کلک را بیاوریم و بانکدار صد دلار جریمه از هر کدام از ما گیرش بیاید. از همه محتملتر این است که ما تا حدی به هم اعتماد کنیم. و هر کدام به ترتیب نامنظمی ورق همکاری یا کلک را بیاوریم و در آخر پولی که به ما میرسد چیزی بینابین باشد پرنده های فست دهم ده که که را از پر همدیگر می کندند یک بازی معمای زندانی تکراری را به نمایش گذاشته بودند چگونه؟ ما این است که فراموش نکنیم پرنده وقت کندن کناهایش به سر خود دسترسی ندارد و باید از یک همراه کمک بخواهد خیلی منصفانه است که به موقع هم محبت او را جبران کند البته این کار از نظر وقت و انرژی برای او هزینه دارد اما نه خیلی اگر پرندهای با تقلب از زیرش در برود کنه خودش که رفت شد دیگر نپذیرد که این خدمت را جبران کند بدون اینکه هزینه به بپردازد به منفعت مرد نظر رسیده است اگر وضعیت‌های حاصل را بندی کنید می‌بینید در واقع با یک بازی معمای زندانی ساده سر و کار داریم همکاری کردن هر دو کندن کنه یکدیگر کاملا خوب است با این حال این وسوسه وجود دارد که با امتناع از جبران خدمتی که به ما شده به سود بیشتری برسیم کلک زدن دو جانبه امتناع از کندن کنا خیلی بد است اما نه به آن بدی که زحمت بکشی و کنه ی طرف را بکنی و در آخر خودت پر از کنه باشی جدول بازده آن را در شکل به ببینید اما این فقط یک نمونه است. هرچه بیشتر درباره آن فکر کنید بیشتر پی میبرید به اینکه زندگی پر از بازی های معمای زندانی تکراری است. نه تنها زندگی انسان ها بلکه زندگی حیوانات و گیاهان هم زندگی گیاهان؟ بله، چرا نباشد؟ یادتان باشد صحبت از راهبردهای آگاهانه نیست؟ گرچگاهی ممکن است اینطور باشد. صحبت از راهبرد به مفهوم میارسمتی آن است. به همه مفهومی که در آن جنها از پیش برنامه ریزی می شوند. کمی دیرتر به گیاهان حیوانات مختلف و باکتری ها بر که همه درگیر بازی معمای زندانی تکراری هند. در ضمن یک کمی مفصلتر ببینیم این تکراری بودن چه اهمیتی دارد. برخلاف بازی ساده که در آن می پیش‌بینی پیشبینی کرد که کلک تنها راهبرد عاقلانه است در نوع تکراری گسترده انواع راهبرد وسیع است. در بازی ساده فقط دو راهبرد ممکن وجود دارد: همکاری و کلک. اما در نوع تکراری راهبردهای زیادی قابل تصور است. و معلوم نیست کدام بهترین است. برای مثال، مورد زیر یکی از هزاران حالت آن است. در بیشتر دفعات همکاری، اما به طور تصادفی در ده درصد موارد کلک. یا ممکن است راهبردها مشروط به روش بازیهای گذشته باشد که حسابگر من یک نمونه آن بود. صورتها را خوب به خاطر می‌سپرد و گرچه در اصل اهل همکاری است ولی اگر طرف قبلا کلک زده باشد او هم کلک می‌زند. راهبردهای دیگر ممکن است حافظهشان خیلی خوب نباشد و بخشنده تر رفتار کنند. آشکارا این قوه ابتکار ماست. که حدود راهبردهای ممکن را تعیین می‌کند. آیا می‌توانیم بفهمیم کدام از همه بهتر است؟ این کار را خود اکسلورد به عهده گرفت. نظر جالبی که او راه انداختن یک مسابقه بود. او به متخصصان نظریه بازیها فراخوان ارائه راهبرد داد. در اینجا راهبرد به مفهوم قواعد از پیش برنامه‌ریزی شده برای کارند. بنابراین برای شرکت شرکتکنندهها مناسب این بود که برنامهشان را به زبان کامپیوتری بفرستند چهارده راهبرد ارائه شد اکسلرود برای سنجش بهتر یکی را هم خودش اضافه کرد به نام اتفاقی که فقط اتفاقی همکاری یا کلک میزند و نقش یک نوع خط مبنای بیراهبرد را داشت اگر راهبردی از آن اتفاقی بهتر نبود حتما خیلی بد بود Excel همه ی آن پانزده راهبرد را به یک زبان کامپیوتری برگرداند و در یک کامپیوتر بزرگ آنها را در مقابل هم قرار داد. به ترتیب هر راهبرد در مقابل تک تک راهبردهای دیگر از جمله خودش قرار داده شد تا معمای زندانی تکراری را بازی کنند. از آنجا که پانزده راهبرد وجود داشت، تعداد پانزده ضرب در پانزده یعنی دویست و بیست و پنج بازی جداگانه در کامپیوتر راه افتاد. بعد از انجام 200 حرکت هر جفت، پولای برده شده را حساب و برنده را اعلام کردند. برای ما مهم نیست کدام راه برد، در برابر کدام حریف برنده بود. مهم این است که کدام راه برد در جفت شدن با چهارده راهبرد دیگر به بیشترین پول رسیده بود. پول فقط یعنی امتیازی که طبق نقشه زیر داده میشد. همکاری دو جانب سه امتیاز وسفسه برای کلک پنج امتیاز مجازات برای کلک دو یک امتیاز تعادل جریمه مختصر در بازی قبلی ما بازده حالو سفر امتیاز معادل جریمه سنگین در بازی قبلی ما بالاترین امتیاز ممکن برای هر راه برد پانزده هزار بود دیویست دور و در هر دور پنج امتیاز برای هر یکی از 15 بازیکن کمترین امتیاز ممکن صفر بود. معلوم است که هیچ یک از این دو وضعیت افرادی پیش نیامد. با یک دید واقع بینانه بیشترین مقداری که یک راهبرد می توان متوسط از 15 بار بازی انتظار داشته باشد بیش از 600 امتیاز نبود. این چیزی بود که اگر هر دو بازیکن مدام با هم همکاری می کردن. یعنی چیزی که اگر هر یک از آنها دیویس دور سه امتیاز به دست می آوردند در صورت که یکی از آنها تسلیم وسوسه میشد که کلک بزند احتمالاً به خاطر تلافی بازیکن مقابل در نهایت امتیازش کمتر از 600 میشد در بیشتر راهبردهای ارائه شده نوعی رفتار انتقام جویان کارگزاری شده بود می توانیم 600 را به عنوان خط مبنای بازی در نظر بگیریم و همه امتیازها را به صورت درصدی از آن بیان کنیم. برای مقیاس به طور نظری می شود تا 166 درصد هزار امتیاز بالا رفت، ولی در عمل هیچ راهبردی روی هم رفته از 600 فراتر نمی رود. فراموش نکنیم بازیکن های مسابقه آدم نبودند، بلکه برنامه های کامپیوتری از قبل برنامه ریزی شده بودند. انسانهایی که آن برنامهها را نوشته بودند نقش ژنهایی از قبل برنامه ریزی شده ی بدن را برای آنها داشتند. شاترنژ کامپیوتری و یک کامپیوتری فصل چهارم را در نظر بیاورید. می توانید این راهبردها را نماینده ی ریز نقش آن برنامه نویس ها در نظر بگیرید. در واقع، هر برنامه نویس این امکان را داشت که بیش از یک راهبرد ارائه کند، گرچه آن وقت تقلب محسوب نشده. اکس لورد هم احتمالاً آن را مجاز نمی است. و برنامه نویس می توانست ها را طوری تنظیم کند که سود حاصل از همکاری کردن آنها فقط به یک برسد